بله، این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است. چه جالب؟ اسم اینجا چیست؟ مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. خیلی فروشگاه در این بازار هست؟ بله، اینجا همه چیز هست، خوب و ارزان. اما راهروی بازار باریک است. بله راهرو باریک و سقف خیلی بلند است. بله اینجا همه چیز برایم جالب است. اینجا همیشه شلوغ است. بله اینجا همیشه شلوغ است. شهرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند. بله همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند